دل من در هوای روی فررخ بود آشفته همچون موی فررخ به جز هندوی زلفش هیچ کس نیست که برخوردار شد از روی فررخ سیاهی نیخ وقت که دائم بود همراز و همزانوی فررخ شود چون بید لرزان سر و آزاد اگر بیند قد دل جوی فرخ به ده شراب ارغوانی به یاد نرگس جادوی فرخ دوتا شد خامتم همچون کمانی زغم پیوست چون عبروی فرخ نسیم مشک تا تاریخ خجل کرد شمیم زلف انبر بوی فرخ اگر میل دل هر کس به است بود میل دل من سوی فرخ قلام هممت آنم که باشد چه حافظ بنده و هندوی فرخ